در مورد اینکه چرا به امام صادق سلام علیه لغب صادق داده شده صادق یعنی راست کن مد. این دو جور جواب داده شده یه جورش روایته مد. و چند هم هست روایت مرحوم شیخ صدوق محدث بزرگ شیعه یکی از این حدیش ها را در کتاب ایلال و آوردن یکی را در معانی الاخبار آوردن که الال و, و مانیو اخبار هر دو تالیف مرحوم صدوق و یک روایت هم در احتجاج تبرسی یا تبریسی هست از امام سجاب علیه سرات و السلام نقل شده. مطابق این روایات صادق نامیده شدن امام ششم حضرت جعفر محمد سلام الله در مقابل جعفر کذابه که بعدها به دو ادعای امامت کرد و اموی حضرت مهدی سلام علیه بود یعنی این فرمایش شما زمان امام صادق به شون صادق نمی گفتند وقتی جعفر پیدا شد حالا بره. روایت اینه بره. روایت اینه که از رسول خدا صلات و سلام نر شده که هنگامی که فرزندم جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن متولد شد نام او را صادق بگذارید زیرا به زودی در میان فرزندان او کسی متولد خواهد شد که همنام اوست متولد خواهد شد که همنام اوس و به دروغ ادعای امامت خواهد کرد و کذاب نامیده می شود بس پیشگویی رسول خدا پیشگویی رسول خداش که اون جعفر ابن علی اموی حضرت مده سلام دلی به دروغ ادعای امامت کرد و در فرهنگ شیعه از او به نام جعفر کذاب یاد میشه. شود درسته. جعفر خالی از او یاد نمی در مقابل از امام جعفر محمد صلوات رسولم به نام جعفر صادق باز روایت دیگه به همین مضمونه که مطابق این روایت به این صورت نفع شده که امام صادق را صادق نامیدن تا از کسی که بدون حق ادعای امامت میکند تشخیص داده شود. آنگاه فرمود شخصی که به درو ادعای امامت خواهد کرد جعفر ابن علی دوم پیشوای فتحی است این مضمون غیر از این دو روایت در یه روایت دیگه ای در کتاب احتجاج طبسی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده بعضی‌ها نگاه خارج از این روایت داشتن گفتند که امام صادق صلوات الله و سلام علیه اولا یک امام را به یک صفت برجسته به نامی یا نامیدن معناش این نیست که بقیه اینجوری نبوده امام صادق صلوات و سلام الله علیه صادق بوده پس علیه از الله بعدی صادق نبودن یه صفت برجسته داره یا امام کازم سلام سلاملاله کزمی غیز میکرد پس برقیه کزمی غیز نمیکردن امام جواد سلاملاله جواد اینه بخشنده درست. امام جواد را جواد و بخشنده لقب دادن پس این میدیگه بخشنده این به من این نفی از برقیه نبوده یه صفت برجسته بوده و بعضی ها گفتن که در زمان امام صادق اظهارات او درست عذاب در آمد مخصوصا اگر از چیزی خبر میداد مخصوصا از آینده خبر میداد پیشگویی میکرد همه درست از آب در میآمد و عملا به او گفتن نه